به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان درویش و خارکن قصه درویش و خارکن از قصه هایی است که با گویش سروستانی در اینجا آورده شده است سروستان بخشی است که در 92 کیلومتری مشرق شیراز قرار دارد و چنان که می‌خوانید گویش نزدیک به گویش شیرازی در این قصه به کار رفته. این قصه را از کتاب فرهنگ مردم سروستان گرفته ایم که حدود بیست سال پیش چاپ اول آن منتشر شده است. آقای صادق همایونی با این کتاب راه تازه‌ای پیش پای پژوهشگران فرهنگ عامه گذاشت و کتاب الگویی برای کارهای بعدی در این زمینه شد. لازم به ذکر است که این داستان را با گویش شیرازی نمیخوانیم، بلکه تنظیم و اجرای آن به زبان فارسی معیار است تا شنوندگان محترم بهتر با این داستان ارتباط برقرار کنند شما رو به شنیدن اون دعوت می کنم یکی بود یکی نبود زیر گنبد که بود غیر از خدا هیش که نبود هرکی بنده خداست بگه یا خدا در زمانای قدیم مرد خار کشی بود که پیر و رنجور بود هر روز خدا می کوه و کلی خار سر هم می کرد و برمیگشت و وقتی که به آبادیش می رسید خارها را می فروخت و برای زن و بچهش نان و غذای اندکی می خرید و می برد خونه هیچ وقت نه خودش نه بچه هاش با شکم سیر نمیخوابیدم. پیرمردم از این بابت ناشکری نمیکرد. روزی از روزها حاکم شر توی کوچه ها میگشت. دید از خونه ای سر و صدا بلنده. از لای جرز در نگاه کرد. دید چند تا بچه ریختن دور پیرمردی و هی میگن گش نمونه, گوش نمونه. حاکم دلش سوخت و تو فکر رفت که چه بکنه؟ بالاخره برگشت به بس رو صبر کرد تا شب شد. اون وقت لباس درویشی به تنش کرد و کشکولیم پر از پلو گرفت و رفتم خونه مرد خارکش و بنا کرد به آواز خوندن. پیر مرد اومد در و گفت گل مولا از اینجا رد شو که خبری نیست. درویش گفت من چیزی نمیخوام فقط دلم میخواد یه ساعتی تو خونه بشینم و خستگی در کنم پیرمرد گفت ای گل مولا بیا تو درویش وارد خونه شد دید بچهای پیرمرد با لباسای پاره پوره خوابیدن گفت پیرمرد اینا بچه کی پیرمرد گفت بچه من هستن اما امشب همشون گرسنه خوابشون برده درویش گفت من یه خورده پلو دارم صداشون کن بلندشان غذا بخورن پیرمرد خوشحال شد بچه ها رو بیدار کرد دور هم نشستن و غذا خوردن درویش گفت میدونی پیرمرد من آشپز حاکم هستم تو هر شب بیا دم خونه حاکم و این خرد غذایی و و برا هات بیار پیر مردم قبول کرد، درویشم خداحافظی کرد و رفت. درویش که همون حاکم شهر بود وقتی اومد به قصر به آشپزش گفت از فرد و شب هر کاری که من انجام دادم تو دخالت نکن، چیزی نگو. آشپزم گفت چشم قربان. بعدم درویش یا همون حاکم به فراش ها و سپاهیان و مستخدمانش نشونی پیرمرد و داد و گفت هر وقت پیرمردی با این نشونیی که بهتون میگم اومد دم در بهش سخت نگیرین بزنین بیا تو خونه شب بعد پیرمرد اومد دم قصر حاکم که همون درویش بود تا اونو دید رفت جلو و مرغ که تا سکه طلا تو شکمش گذاشته بود و دوخته بود لای پلو گذاشت و بهش داد بهش گفت ای پیرمرد، مرد اینا رو بردار و برو و با بچه هات بخور پیرمرد مرد خداحافظی کرد و رفت وقتی به خونه رسید زنش اونقدر خوشحال شد که حد و حساب نداشت اما وقتی خواستن بخورن زن فکری کرد و گفت ای شوهر اگه بخوایم مرغ رو بین بچهها تقسیم کنیم به هر کدوم یه لغم بیشتر نمیرسه کاشکی پلو رو امشب بخوریم مرغ رو هم بدیم به همسایه به جاش آرد بگیریم برا بعدنا پیرمرد بدش نیومد همین کارو کردن پلو رو خوردن و مرغ رو دادن به همسایه و آرد گرفتن وقتی همسایه شکم و باز کرد دید به به خدا برکت بده شکم مرغ پر از سکه طلا اول باورش نمیشد بعد که مطمئن شد سکه ها طلا هستند هیچ نگفت و سکوت کرد همه سکه ها رو آورد پیچید توی دستمالی و گذاشت توی شکافی که پشت دیوار خونه پیر پیرمرد بود شب بعد باز حاکم با لباس درویشی اومد خونه پیرمرد. وارد شد اما دید زندگی پیرمرد هیچ فرقی نکرده. به پیرمرد گفت: مرغ دیشب چطور بود؟ پیرمرد گفت: ما نخوردیم، دادیم همسایه جاش آرد گرفتیم. درویش اصلا به روی خودش نیاورد. بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. اما یک کیسه پر از طلا گذاشت تو تاخچه راهروی حیات پیرمرد واسه اینکه صبح که میخواد بره کو اونو ببینه و برش داره از غذا پیرمرد شبا کمتر پیش میامد که در خونش رو محکم ببنده نصف شب یه فرد مستی وارد اون راهروی حیات شد و فکر کرد که به خونه خودش پا گذاشته دم چهار در افتاد و دیگه نتونست بلند شه و بره وقتی که صبح بیدار شد مسیم از سرش پریده بود چشمش به کیسه افتاد که توی تاخچه بود برش داشت دید خدا برکت بده پر از سکه تلاس از خوشحالی هیچی نگفت یواشکی اونو گذاشت تو شالش و در رفت شب که شد باز درویش اومد دید بازم زندگی پیرمرد فرقی نکرده از پیرمرد پرسید صبح که میخواستی بری کو، تو راه روی حیاتت چیزی ندیدی پیرمرد گفت نه بازم هم درویش رفت و وقتی به قصرش رسید گفت دیگی که اسم خودش یعنی حاکم روش حک شده رو بیارم اون وقت اونقدر سکه توش ریخت تا نصفش روی سکه ها هم پلو ریخت و خودش اونو برد و به پیرمرد داد و خدا کرد و برگشت. زن پیرمرد به شوهرش گفت: بهتر پلو رو بذاریم برای صبح فردا. پیرمردم قبول کرد. از غذای روزگار همون شب قافله‌ای از راه رسید و یکی از مسافراش مریض بود و قافله پشت خونه پیرمرد اوتراق کرد. مریضشون رو بردن پیش حکیم. حکیم هم گفت: که علاوه بر دوا باید به مریض پلو بدین به ناچار اومدن دم خونه پیر و در زدن و گفتن ایساب خونه ما مریضی داریم که طبیب گفته باد بهش پلو بدیم اگه داری کمی پلو به ما بده به جاش ما بهت آرد میدیم پیر مرد با شنیدن این حرف خوشحالم شد زنشو بیدار کرد و دیگه پلو رو بی و کاست بردن دادم به رئیس قافله و به جاش آرد گرفتن. رئیس قافله وقتی که پولو رو دید، دید که این دیگ سنگینه، این پلو خیلی زیاده. سر دیگ و وا کرد، دید خدا بده برکرد دیک دیگ پر از سکه تلاس. پیش خودش گفت حتما زیر کاسه نیم کاسه ایه. چه بهتره که زودتر از اینجا برم. همین کارم کرد درویش بازم اومد دم خونه پیرمرد دیگه چیزی نمونده بود که دیوونه بشه آخه دید عجب خونه همونیه که بود به پیرمرد گفت پلوی دیشب رو اون پله که تو دیگ بود و نخوردیم پیرمرد گفت والا بچه ها خوابیده بودن ما هم دیگه پلو رو فروختیم به یه رئیس قافلی درویش خیلی ناراحت شد رفت و وقتی به قصرش رسید پیش مادرش رفت و همه رو تعریف کرد مادرش که زنی با تجربه و سرد و گرم چشیده بود گفت ای فرزند بنده هیچ وقت نمیتونه به یه بنده دیگه خدا کمک کنه خدا خودش باید به بنده کمک کنه بعد دست پسرش رو گرفت و بالای قصر برد و گفت بیا تا هر دوتامون نماز بخونیم و از خدا بخوایم که گره از کار این پیرمرد باز کنه همین کارو کردن و همون شب دعاشون مستجاب شد رئیس قافل دید اسم حاکم روی دیکنده شده از ترس سوار شد و برگشت و دیگ پلو با طلای توش و گذاشت توی راه روی حیات پیرمرد و رفت از طرف خدای موشی هم اومد سکه های تلایی رو که همسایه تو اون شکاف دیوار قایم کرده بود و در آورد و ریخت تو تاخچه خونه خارکش از اون جوونی که کیسه طلا رو تو راه روی حیات پیرمرد دیده بود از ترس اینکه مبادا دزد بشه و دزد حسابش کنن کیسه رو آورد و انداخت تو دالون فردا صبح که مرد خارکش پا شد و خواست بره صحرا دید کیسه افتاده تو اون دالون یا اون حیات راه رو برش داشت دید خدا برکت بده سد دو سکه طلا توشه زنش هم همون موقع چشمش به تاخچه افتاد دید یه موی سکه ریخته تو تاخچه پیر مرد وقتی میخواست برگرده تو خونه دید عجب دیگ پلوی رم آوردن و گذاشتن تو اون راهروی حیات. خیال کرد دیگ خالیه اما وقتی خواست برش داره دید از سنگینی نمیتونه حرکتش بده. درش برداشت دید پر از سکه طلاس اما همه سکهها سکه ها با پلو قاطی شده. بالاخره دیگو برد تو خونه. زن و شوهر همه چی رو هم تعریف کردن و دیگه از خوشحالی نمیدونستن چه بکنن با بالاخره پیرمرد مرد به زنش گفت من دیگه دست از خارکشی بر می و تجارت میکنم پیر مرد مشغول تجارت شد و مدتها گذشت روزی حاکم دوباره به یاد مرد خارکش افتاد و با لباس درویشی اومد دم خونه پیرمرد. خونه پیرمرد عوض شده ولی سردر خونه پیرمرد مثل سردر خونه خودشه دلش سوخت فکر کرد که پیرمرد بدبخت از نداری خونش رو فروخته و رفته و یه نفر دیگه‌ای این خونه و این دم و دستگا رو ساخته از این راهگذری پرسید ای راهگذر اینجا خونه کیه رهگذر جواب داد چی بگم گل مولا از کارای خدا این خونه تاجریه که تا چند وقت پیش خارکن این آبادی بوده درویش تا این جوابو شنید به طرف قصر رفت و اونقدر خوشحال شد که حد و حساب نداشت وقتی به قصر رسید یه سر رفت پیش مادرش و قصه خونه پیر مرد رو گفت مادر هم بوسیدش سیدش گفت دیدی که خدا همه کارا رو میتونه بکنه؟ درویش و خارکن، فرهنگ مردم سروستان، صفحه 396، صادق همایونی، شرکت بهنشر، چاپ دوم 1371. شنوندگان عزیزم، امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و با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 کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های سوتی صوتی